حکایت، پیاده سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت، نه به استر بر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم، نه بر سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم ما سوده و عمری به سرارم. اشتر سواری گفتش ای درویش کجا میروی برگرد که به سختی بمیری، نشنید و قدم در بیابان نهادو. برفت. چون به نخلی محمود در رسیدی، توانگر را عجل فرا رسید، در بیش به بالینش فراز آمد و گفت، ما به سختی به نمردیم و تو بر بختی بمردی، شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست، ای بسا اسب تیز رو که بماند، که خرلنگ جن به منزل برد، بس که در خاک تندرستان را دفن کردیم و زخم خورده نمار.